ش اینو یه سری رو می‌خاستن که اینکه سمینار. سمینار. آه باید آه باید. که شاید باشن آره. بعد گفتن بعدش بذاریم. دو تا 6 یعنی بذاریم کلاسو. آره نه ما... تا 6 دیگه نمیشه سودان خیلی سخت خیلی زیاده. با باید همچین سمینار برای کلاس ما مجانی باشه چرا ما بریم پول بدیم؟ قبول داریم سال هشتاد و سالتانت شما شما این نصف قیمه دو چه میزونم؟ هم نه که بدونم؟ تا شما نه نه نه توضیح، تولید و, و کی بود؟ پس اینجا نه نه تابسو نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه من همین من کندوشو ازگرد تابسو میمده من, مستن. من, مستن. من, میمد. من اه؟ آه آره گفتم بیاره اتفاقه کارت دعوتم نمیدهدن خودم نم. حالا آره لدم. خب چی شد؟ من گفتم شنو سوات رو گفتم در این محص کشتیم های سند استراتژی داشته شده شون گفتیم چی تا اول تا 6 مانون است شیشون سوات رو گفتیم پر گفتیم توی جلسه آینده هر پرصفه سوات رو رو کنیم ماتریس جهی رو کنیم من نگفتم همونست آمه... نگفتم نه. چی؟ ببینید مدیریت استراتژیک سخته ولی خب ما سعی میکنیم این با زبان آس آسانتر بگیم ولی ده درس سنگین سنگینه و بعد خب اجازت بشید با این درست که درش به کار رفته مثل مثلا توز، مثل جی ای حالا اینا توزی میدید ما رو. ما روز اول که حالا من فکرم جلسه گذشته اصلا هم که سنگین باشه بازش که بکنیم ساده میشه بعد خودتونم باید این مقدار اینا مطالعه داشته باشید تو خونه. الان هفته گذشته مثلا گفتم سوآت رو، جی ای رو تو بزور. ببینم که هفته با هم این سوآت رو داشته باشیم. ببینیم چه سوراخ میشه. اصلاً جی ای رو بله من چیزش چی؟ جی ماتریس نتی. بله، تو زو من پیدا کردم. ولی سوآتم که گفته بودید و بیشتر خودم رو ولی شده برام باس کردین. خاصاً. مرسی. مرسی. حالا نشستم. جدیه میگی؟ آره جی و سه چیزی شد ما هم خیلی نگرد بگی؟ استفاده از مثلا استراتژی بال و به جای مثلا بر آهلیتی ریست ده نه بابا مستش... یا همچنین چیزی بود از ساعت مثلا میده نه فکر با موزید سعنت به خود شاید نمیبونم مثلا مثال مثال زده بود مثلا اینجوری بود یعنی ما این برشون نمیده رو این؟ خانه بود چیگه بفتیدم با ما مفتیم کشف کننده حسنام شاهره این هم نه بستشید میکنی بمونم خب نه خب ببینید من جلسه گذشته تقریبا من زدم بحث مدیریت استراتژیک، خروجی، بحث مدیریت از بحث ما در این چند جلسه که در خدمتون هستیم نوشتن یک سند استراتژیک که ما مرحله به مرحله اینو خدمتون داریم به قول معروف آموزشی استپ step by step. نوشتن سند استراتژیک خب که ما جلسه گذشته بحث چشمنداز و رسالت داشتیم یعنی برای نوشتن یک سند استراتژیک شما در پله اول باید چشم انداز و رسالت داشته باشید. بعد از چشم انداز و رسالت ما هفته گذشته در رابطه با سه تا ماتریس با هم صحبت کردیم. درست یادتون. یکی بحث تحلیل سلامت تحلیل مزیت رقابتی شرکت بود. یعنی بدونیم اون مزیت رقابتی شرکت اما وضعیتش به چه صورته؟ یکی دو تحلیل سی پی یا تحلیل محیط رقابتی بود میده وضعیت سازمان در مقایسه با روغبا به چه صورته؟ خب و سه ارزشی شیرا که سازمان برای مشتریانش داره خلق میکنه را در قالمه یوماتریز ما هم بحث کردیم خب تا اینجا هر صحبتی با هم داشتیم در جلسه گذشته در حقیقت تحلیل سازمانه خب وضعیت سازمان، ستیتس سازمان به چه صورته؟ خوش میگم. حالا تا اینجا سوالی هست من در خدمت شما. سوالی نقطه خاصی هست؟ توی سه‌تونه که گفتیم سه تا آرتिस्ट در قالب چشم انداز رسالت داره انجام میشه در parallel. در parallel باشه. واسه شناخت به وضعیت سازمان میخواد مشخصو. ببینید سازمان یه وضعیتی داشته باشه در مقایسه با رقبا به چه صورته؟ چه ارزشی رو خلق میکنه و مزیت رقابتیش چجوری؟ وضعیت سازمان. خب حالا ما وقتی صحبت از چشم انداز و رسالت میکنیم این هدف اصلی سازمان درسته؟ استراتژیم یعنی راه رسیدن به, سا... به اهداف خب؟ حالا هر آن چیزی که از این جلسه ما با هم صحبت میکنیم یا مراهدی که ما خدمتون داریم میگیم اینا سازمان چجوری میخواد به این اهداف برسه؟ نه رسیدن به این اهداف به چه صورت؟ اوکی؟ مه. دقت بکنید ما یه بحث باز من اینو مجدد نویسم ولی پاک میکنم خب؟ تکرار مکرراته ببینید اگر سازمان ما به شکل یک مخلوطی ببینیم خب؟ قسمت بالای این مخلوطی استراتژی های کلان شرکتیه خب؟ قسمت دوم این مخلوطی استراتیجی های تجاریه درسته؟ بنابراین سوم این عملیت عملیت و تمامی این ها با هم در ارتباطه. خب؟ اساس استراتژی راه رسیدن به هدفه. این تعریف استراتژی پیک هر سازمانی، چشمانداس و رسالت. خب؟ ما الان این اصلا ببینید یه خلاصه از سند استراتژیکه که حالا من به صورت شماتیک اینجا نوشتم. ما الان مرحله به مرحله میخوایم استراتژی ها رو برای سازمان یا یاد بگیریم. چه جوری استراتژی برای سازمان نوشته میشه و چگونه این استراتژی با هم در ارتباطه و عملا این مثلثه میشه یک سند استراتژیک. درسته؟ الان تا اینجا مطالعه داستان چی؟ ده. ما الان بحثی که داره که استراتژی های کنال شرکتی امروز میخوایم وارد بشیم. یعنی ببینیم که چه ما می تونیم استراتژی های کلان مالی یک سازمان تدوین بکنیم بعد به استراتژی تجاری رو میگیم و بعد استراتژی عملیاتی واسه درش یون فانکشنال تیم نه تیم استراتژی کجا یعنی چی تیم استراتژی کورپرات استراتژی بزنس یونیت استراتژی تیم, استراتجی. تیم تی ای ای ام هم. به آره یا فانکشنال استراتژی میگن یا پرشنال میگن حالا. دپارتمنتال استراتژی ده ببین این الان من میکنم ده. ببین استراتژی هایی که تو این لایه است متوجه هستید استراتژی های واحدی دپارتمانیه. خب شما آن چیزی که در بازاریابی یاد گرفتید در مالی یاد گرفتید در حسابداری یاد گرفتید در مدیریت منابع انسانی یاد گرفتی اینه استراتژیهای های امنیاتیه لیکن می چی میخوام یعنی مثلا شما میخواید یک سندی رو برای واحد آموزش بنویسید یا یک برنامه به واحد آموزش بدید یک برنامه میخواید به واحد بازاریابی بدید یه برنامه میخواید به واحد مالی بدی اینا این برنامه ها همه استراتژیهای عملیاتی از اسم دیگه استراتژی عملیاتی میدونید چیه برنامه ریزی اگه تو مشکل تو مدیریت مدیریت ساختار سازمانی تو چپتر برنامه ریزی یه بحثی کردی گفتیم فرق برنامه ریزی با استراتژی چیه گفت جفتش یه معنی رو میگه ولی برنامه ریزی برای افداف کوتاه مدت برای بقیمان دپارتمان ها. برای فانکشنس های سازمانه خب میرون قسمت دوم، استراتژی های تجاری اینجا استراتژی است که سازمان اتخاذ میکنه تا تهدید رقابتی رو خونسابه کنه خب به استراتژی کلان شرکتی استراتژی کلان شرکتی چی بودش؟ مزید ادید. ام نازل ذوب ولاتایل جداکی نه به کلان شرکت کلان شرکت ترسیش توی اجتماع نه اینا نیست استر کلان کلان ام تو اطلاعیست؟ سوالتی نمیشه این؟ چیزی رنجیدن است که کلان نگفت. کلان نگفت. نه من هنوز که مسلما وارد نشدم ولی توضیح دادم استراتژی کنان شرکتی استراتژیایی است که سازمان میخواد که در سطح کلان چکار میخواد بکنه. در سطح کلان میخواد چکار کنه؟ مثلا آقا، سازمان می‌خواهد تصمیم بگیره بفرما، سلام احبار شما روز خواهش سازمان می‌خواهد تصمیم بگیره در سطح کلان که آقا، سرمایه گذاری بکنن یا برای بله زیرساختش متوجه اصلی؟ سازمان می‌خواهد تصمیم بگیرد که توصیه محصول بدهد توسعه بازار بدهد ها؟ سازمان میخواهد تصمیم بگیرد متوجه هستید که در حقیقت برای تنف و پذیریش اقدام می‌کنه سازمان اصلا میخواد تصمیم بگیرد خودشو رو شات داون بکنه یعنی مدیریت سازمان تصمیم میگیره که سازمانو درشو ببنده سازمان تصمیم میگیره 50 درصد در لینگوارو بریزه بیرون سازمان تصمیم میگیره 50 درصد در لینگوارو اضافه بکنه و مثال دارم خدمتتون میذارم اینا همه هم استراتژی‌های کلان سازمانیه استینگیری کلان سازمانیه. اصلاً از اسمش مشخصه. خب؟ از اسمش مشخصه وقتی ما میگیم کلان یعنی در صد کلان بتظویر بشه. یعنی مدیریت ارشد درگیری این داستانه. خب؟ کار ما وارد این قضیه میشیم که استراتژی‌های کلان شرکتی چیه؟ تجاره چیه؟ و عملیاتی چیه؟ خب، پله به پله با هم بریم جلو. دنج متوجه به قضیه چیه؟ خلاصه از این سرد استراتژی. خب؟ و تمامی این استراتژی باید برای سازمان تدوین بکنیم و برای از کردن این استراتژی هاست که ما سازمان میتونه به سمت چشم و رسالت خودش حرکت بکنه خیلی خوب حالا دقت بکنید ما برای تدوین استراتژی های کلام شرکتی درسته؟ یعنی اول هستم دیگه ها؟ بره بره. برای تدوین استراتژی های کلان شرکتی ما ابزار متفاوت داریم ما ابزار های متفاوت داریم خب؟ یعنی روش های متفاوتی برای تدوین استراتژی های کلان شرکتی موجود است این روش ها چیه؟ روش شماره یک سوارت این روشه یعنی از روش ما سوات ماتریس جی ای یا ماتریس مکنسی هم بهش میدن و ماتریس توس میایی به استراتژی های کلان شرکتی رو تقدیم میکنیم متوجه یعنی من نستی؟ یعنی هسته کار رو میخواد ببخشت، چهار تاست کیو اسپی هم هم اینجا هست خب؟ این روش هر برده. ما رو توضیح میدم، این روست اتان بارن ها میشه از روش سوات جی ای توز و QSPM اس استراتژی های کلان شرکتی رو تدویل می خب؟ و جالب اینه که این چهار مرحله و حتما وجود داشته باشه یعنی اگر شما جی ای QSPM نداری سوال به تنهای بی‌معنیه. اصلا سوال به تنهای معنی نمیده. به خاطر همین بود که من جلسه گذشته گفتم سوال، جی ای و توز رو مطالعه کنید حالا توزی ما میگیم خب؟ ی روش برای تعیین سر strategic روش دوم روش space space strategic positioning and action حالا من فقط بنویسید، اینا موارد رو دوش وارد بیش اینام یک روش یک متد دیگر برای تعیین سر کانال شرکتی. روش سوم روش سوم روش بی سی جیه بی سی جی را تو بازارگربه عاشق شدید باشنم گروه مشاوره بوستون بوستون کانسالپیشن گروپ ها؟ نه نه نه اوش. اوکی مشکار نده ما انجا میگم این هم یک روش دیگه است برای باید پدبین استراتیجا کردن شرکتی بوستون کانسالپیشن گروپ و گروه مشاوره بوستون خب پر روش چار رو روش چار رو. شوی یکی از اینچان را روید روش گراند گراند ماتریس گراند خب دوستان ما برای تدویم استراتژی های کلان شرکتی دقت میکنید با چهار روش داریم؟ خب؟ و حتما این چهار روش هم باید در سازمان تحلیل بشه یعنی انتخابی نیست بگه آقا مثلا من با روش یک مهم استراتیجی کردن شرکتی می روزم. کاری با روش دو و سه و چهار ندارم یا با روش چهار می آم کاری با روش یک و دو و سه ندارم هر چهار تا همزمان توعمل باید در سند استراتژیک شما وجود داشته باشه این خیلی مهم ها. من یه سری متریال بهتون دادم دیگه درست یادم. خب بریم مثالای استراتژیک رو نگاه کنیم که تو اون متریال نوشته واو دیسینو ببینم چهجوری نوشته. وال마트 خب تمام بیزینس پلن های دنیا یا اسناد استراتژیک دنیا رو که نگاهش کرده هر شب چهار تا استفاده تا برای تدوین استراتژی های کلان شرکته. حالا ایا تو باشه مایه بحثی رو توی مدیریت با هم داشت می‌گی مدیریت آره مدیریت که من به شما گفتم سواتی که ما ازش داریم صحبت میکنیم یه چیز کوچولو و پله اول برای تدمین اسناد مذرافه هم های یک سازمان شما که سواتی میمیسید در ادامه باید جی ای رو داشته باشید توز داشته باشید و کیو اسپی ما داشته باشید و اگر یک، دو، سه این سه تا میتود رو نداشته باشید همانا سوات بیمنیه. این واقعیتی، یعنی این اینی که من دارم میگم حالا جالب اینه که من تو اسناد استراتژیک خیلی از شرکت‌ها دیدم رو انجام میدم بعد نمیدونم میان بر اساس سوات استراتژی رو تدوین میکنن بدون در نظر گرفتن اسپیس DCG و کلان استراتژی اصلا خایاته. و این نکته بسیار مهم حالا ما چرا چهار داریم برای نوشتن استراتژی کلان شرکتی استفاده میکنه چرا؟ چرا چهار روش داریم آفرین. دوست عزیز، تو داری استراتژی کلان برای سازمان می‌نویسی میخایي که آقا دستگاه، تجهیزات برو بخر، نخر سرمایه گذاری روی زیرساخت بکن، نکن. توسعه بازار بده نه اینا، اینا تصمیمات کلان شرکتیه. به تنهایی با روش سوال اگه شما تصمیم کلان بخواید بکنید با سر میخورید سر. روش ها و میتوت دیگری باید وجود داشته باشه که از جوانب مختلف شما سازمان رو بکنی و با قول معروب و بهترین جواب رو یا بهترین استراتژی رو باید سازمان رو بکنی بکنید این به خاطر اینه خب ببینید ما الان یک دو سه چهار میتوت برای نوشتن استراتیجی های کنال شرکتی هست بینید ترتیب وارد بشیم سوات اول وارد بحث و بعد اسپیس بعد بی جی سوالی هست چرا شما حالا اینطوری یه روش نمی‌کنین من نه نه کل روش کار بچو متدش با فرمان من, من توضیح دادم خدمتتون ببین سوال یک تحلیل غیر خطیه سوال یک تحلیل یعنی شما میاید 11 عامل محیط بیرونی و تعداد محیط داخلی رو تحلیل و خیلی وابسته است به نظر یک فرد یا افرادی این یا از یه خوبه یه سر مزیعت‌ها داره ولی یه سری بابان اونان نقاط ضعف هم داره ولی اسپیس تحلیل خطیه این براساس رو یه سر چک دیستو مشخص شما وضعیت سازمان رو تعلیل میکنی متوجه می‌شه بچه می‌گن یا BCG از یه دیده دیگه داره نگاه میکنه. هر کدومش یه سر نقاط مصبت نقاط ظرف داره باید. یا بابان اصلاً متوداش فرق میکنه؟ جونم. موسیقی سال این متفیکس دیگه هم گفته و دیانا این به ما این ده سال رفت داره الالایزاس متفیکس چی بود؟ نه میگم این که همین استراتیج آره اینجور که ننمشتم اون یک چیز خلاص آره خب یه بخصی رو من قبل از این که وارد همین روش‌های استراتژی کلان شرکتی بشیم و با هم بریم جلو خب، ببینید دوستان به استراتژی های کلان شرکتی یعنی تدوین های کلان شرکتی رو با سوات چون کنم که باید سوات بشیم این استراتژی های کلان شرکتی رو باز کن، من مثال زدم براتون ولی واقعا استراتژی های کلان شرکتی یعنی چی؟ توضیحاتش رو بدیم وقتی میگه corporate strategies و من از درس مدیریت اینا رو دارم تکرار می ولی واقعا corporate استراتژیز یعنی چی استراتژی کلان شرکتی <تصفيق> بنت ما تو استراتژیز خب یا استراتژی کلان شرکتی به 12 تا استراتژی تبدیل میشه استراتژی کلان شرکتی شامل 12 تا استراتژی 11 نوع استراتژی بروی ببینیم اینا چیه یک من از این برمینویستم پارسی یک پارچگی عمودی روب عقب یا بالا ای استراتیجی کنال شرکتیه یه موقع از سازمان من توضیح رو بدم یه موقع از سازمان میخواد زیر رو توسعه بده دستگاه بخری نیروی انسانی استخدام بکنه دورای آموزشی بذاره که رو به تعمین کننده به حد اول برسونه یا به عبارت قدرت چانه در مقابل تعمیل کننده ببره بالا زمانی که سازمان اقداماتی انجام بدهد که وابستگیش به تعمین کنندگان به حداقل برسه اینو اینو بهش استراتژی پارچگی عمودی رو به عقب چرا رو به عقب اینو داخل پرانتز بگم یه <تصفيق> فلسفه اینجا وجود داره به نام مدیریت چرخه تعمیم خب مدیریت چرخه تعمین supply منجمنت فیزو من بوده خب؟ مدیریت چرخه تنین چیه داستانش؟ میگه وقتی یه محصولی میخواد تو سازمان تولید بشه تو هر سازمانی از سه مرحله بعد عبور بکنه خب؟ مرحله یک بهش میگم بالا دستی ها این خود سازمانه پایین دستی ها. مرحله سوم پایین دستی ها. خب؟ بالادستی ها کیا هستن برای سازمان؟ وقتی مواد متریالی بخواد تولید بشه تو هر سازمان، از هر شرکت سازمانی سه لایه درگیره، بالادستی، خود سازمان، پایین دستی. بالا ها کیا هستن؟ تامین کنندگان. مخرج تامین مواد آره دیگه، حالا هر چیزی، یا مواد اولیه یا هر چیزی. متریال، چه میدونم، خدماتی که به شما میدن، تامین شما. سپلایر های شما. قصود دوم که خود رو یعنی مواد و متریال اولی از تمین کننده از بالا دستی ها وارد سازمان میشه درسته؟ و تبدیل میشه به محصول محصول تبدیل کی میشه؟ مشتری که پایین دستی هاست دیگه تبدیل کی میشه؟ واسطه ها واسطه ها، بله دیگه تبدیل کی میشه؟ توضیح کنندگان حالا کلان، خورد اینا رو ما بهش میگیم پایین دستی ها حالا سازمان ها دو تا مشکل همیشه دارن یکی بالا دستی ها هستن یکی پایین دستی ها هستن درسته؟ تا این مواد و متریال اگه بخواد برسیم دست اندیوزه من میگم دو تا مشکل دارن یکی بالا دستی ها یکی پایین دستی ها پهمی کننده؟ توضیح کننده دقت بکنید استراتژی های کلان شرکتی خب باید کمک کنه به اون چیزی که شما وابستگی وابستگی سازمان به بالا دستی ها و پایین دستی ها به حد اقل برسه این خیلی مهمه ها تفکل استراتژی سازمان همیشه این بد باید باشه که وابستگی به بالا دستی و پایین دستی به حد اقل برسه اوکی؟ کلیره؟ آه؟ اگه متوجه نمشید بپرسید الان من اینی که ببین بحث مدیریت چرخه تامین رو من به خاطر گذا چون فرصت بالا بالدستی و پایین دستی رو فقط بدونی. خب بالا دستی شو کننده، پایین دستی شو توضیح کنندگان حالا کلان و فورد و غیره گزاره. خیلی خب ببینید. اینا چه چیزی مثل استراتژی می نزه که به مثلا کار اول دفعه نشه، واسطانه نشه. وابستگی به حداقل برسه. آه. مثلا حد آره واقستگید ها ادرگرد برسه ممکنه شما با به وجود آوردن یک سری ابزارهای تبلیغاتی خیلی قوی واقستگیده به توضیح کننده ها کم میکنه یعنی توضیح کننده برای تو تبلیغ نکنید. نیدونه چی دارم میگم و این خیلی مهمه که ما در بحث مدیریت استراتژیک باید قدرت چانه زنیمونا در مقابل بالا دستی ها و پایین دستی ها همیشه افزایش بدیم خیلی مهمه خب اولین استراتژی اولین استراتژی در بحث استراتژی کلان شرکتی استراتژی یک پارچگی عمودی رو به عقبه یعنی شما رو به بالا بش میگن خب یعنی شما برنامه‌ای در سازمانت داشته باشید که وابستگی به تامین کننده بعد در برسه درسته اه. به تامین بعد دومین استراتژی استراتژی های یک پاتچگی بارکگیه... عمودی رو به جلو یا پایین این, این استراتژی مختص تامین کننده هاست فقط خود اولی رو شما دارین میگین استراتژی اول استراتژی است که آره به نوعی قدرت چانازن شما در مقابل تامین کننده میبره اون نقطه است تامین کننده آره برنامه‌ای است که آره قدرت شما در مقابل تامین کنده میبره بالا استراتژی های یک پارچگی عمودی رو به جلو یا پایین استراتوژی است که وابستگی شما رو به توضیح کنندگان کم میکنه یا قدرت چانه تو در مقابل توضیح کننده میبره بارن متوجه منظور من میشین؟ بله قدرت چانه زنی سه سه های یک, افقی. افقی. یک پارچگی افقی استراتژی یک پارچگی افقی چیه؟ برنامه ها یا استراتژی که شما همکاری میکنید با رقباتون جهت تولید کالا و خدمات برنامه‌های برنامه و استراتژی‌هایی که شما همکاری می‌کنید با رقباتون جهت تولید کالا و خدمات این استراتژی یک باچگی افقی همکاری, همکاری با رقبات، جهت تولید کالا و خدمات میشه یک باچگی افقی همکاری با رقبات، مثال یه مثال بریم یه حساب بذاریم من چند تا دوستان هم هستم لوازم قطاطی ده که آتگو، آتومیل های کامیل های بزرگ به از اینا همش اطلاق داره که همساده بقیلی چه چیزیان یعنی توی ایتشوریش داره اون میدونه که موجودی هماره هیچون چیه بیستان آوازان، بیستان آوازان هم با هم پرتایی دنیه را قدید آر این بنو یک پارچگی افقیه. آما مثلا تو ضعیف شده ده مثلا تو تا بدن که یکی dele قدیم بشه اینا مجبورن که مثلا این آفرین. آورده شده ببین مثلا تو یه مخطعی سونی تو یه مخطعی همین از این خلاد ادمی‌ها خب سونی و اریکسون درست میگم نه؟ اونا با باهم جون شدن. یه برندی رو دادم بیرون به نام Koneksa. نام استویاریکسا. اینو میشه یک پارتنری افقی. همین الان مثلا هم جدا شده. جان؟ الانم جدا شده. آره، الانم جدا شد. همین الان ما تو سازمان خودمون، تو شرکت خود یه استراتژی یک پارتنری افوقی خیلی قوی داریم مینیم جلو. یکی از شرکت‌های همکار ما همکار که میگن به نوعی توی گروه هستی ما یعنی سحامداره یک که من خود شخصتی شرکت ها فرق میکنه یکی از شرکت ها به نام هنیف خب؟ شرکت ما به نام ویرا این دو تا شرکت خب؟ دو تا شرکت که به نوعی رقیب هم دیگه هم هستن اومدن، ما اومدیم. همکاری داری میکنیم توربینی رو داریم تولید میکنیم به نام H W توربینه H W حنیف ویرا اینو میشه همکاری یعنی هر گونه همکاری که دو تا شرکت با هم انجام بدن جهت تولید کالا یا خدمات بهش میگن یک پارچگی افقی جهت اطلاعتون میگم 90 شرکت در دنیا بحث یک پارچگی افقی رو داره شما یه یخچال بوش خریداري میکنی میبینی موتورش سامسونگه خب میری ماشین رو خریداری میکنه میرین لاستیکش مثلا تویتر نیزماری شرکت دیگه است اینا ما بشتیم یک پارتیگی افقی یه مثال دیگه من بزنم گروه صنعتی سایپا خو؟ پارس خود رو, رو خریداری کرد. بورو صنعت سایپا پارس خودرو رو, رو خریداری کرد. این میشه یک افقی. و یکی از اسلواتکاپس یعنی استراتژی کلان شرکتی به خاطر اینه. یا مثلا به فرض مثال. الان ماشین های 206 مپناش یک پارچگی افقیه. چهجوری؟ شرکت رنو. رنو ماذرا میخوام پژو ایران خودرو. درسته؟ شرکت پژو به ایران خودرو مجوز تولید پیجو رو داره دیگه حالا اطلاعات، نقشه ها، رو در اختیارش کن این اینجور همکاری به یه تا شرکت به نوعی رقیب اینو بابش ای یک پاچیگه افقیه جا افتار برای تو قضیه چیه؟ کلیر؟ ها؟ هران کلیره دیگه <تصفيق> خیلی از هولدینگ ها می کنم بله، اصلا یه چون نرمیه حالا استراتژی چهار رو رسوخ در بازار هنجام توسعه بازار شیشم توسعه محصول این ستان رو فرا بیریم جلو رسوخ در بازار توسعه بازار، توسعه محصول این سفر دیگرد استراتیجی های شرکتیه تو بازارگا بیش؟ بازار بازارگامی اشاره شده بهش؟ حسولو بازار رسوخ در بازار، توسعه بازار توسعه محصول خب بگید یعنی چی آره رسوخ در بازار یعنی چی؟ اولین جست مثلا بخواهیی توی یه بازاری مثلا معرفی کنی و اینها و دفعه اولیتی میشه رسوخ در بازاری بله؟ توسعه بازار ولی خیلی بازار توسعه تو بدی تو بیشتر بازارات محصولتو بیشتر نشون میدی و بیشتر نمایش بدی توسعه محصول هم که اونم همونطور همون همونم یا یه محصول رو توسعه بدی یا نوع محصول که من این مانتریسی میکشم اینجا ها، اینو بهش بگیم بازار اینو بهش بگیم؟ محصول یه محصول رو توی این سهلون هستید، درسته <خصف> <gasps> یه محصول جدیدی رو میخوای وارد کنی؟ وارد یک بازاری بکنی؟ یک محصول جدید رو وارد یک بازاری بکنید این رو داشته در بازار خب؟ ولی یه موقع به سمت راست فریکت میکنید استراتژی توسعه بازاره یعنی یه محصول برای بازارهای مختلف شما میفرستی. استراتژی میشه توصیح بازار یک محصول برای بازارهای مختلف اینو بهش میگن توسعه بازار مثل کدوم برند مثل الان زعفران. زعفران یک محصول ایرانیه که برای بازارهای مختلف در دنیا داره صادر میشه اینو بهش میگن توسعه بازار کاویار استراتژیک توسعه بازاره کیوی استراتژیک توسعه بازاره یک محصول برای بازارهای مختلف اوکی برای یه موقع هست، شما تو این وضعیت هستی یعنی شما برای یک بازار، توسعه بازار نمیدی برای یک بازار محصولات مختلف عرضه می‌کنی، یعنی توسعه محصول، محصول مثل خاله، کاله محصولات مختلف رو داره ارائه می کنید درست چه پنیر، پنی، کرش، شیر، مربا چه می‌دونم سوسیس، کالباس، بستنی، دوغ برای چه بازاری بازار ایران؟ اینو واسه توسعه محصول. و خیلی برندهای ایرانی الان استراتژیشو توسعه محصوله. نه توسعه بازار، چون به خاطر بس تحریم‌ها باشه. این اومد یا بعد مثلا توشیه برد بعد اومد وارد مربای برد شد. اینو اومدش توسعه محصوله. <تصفيق> متوجه شد داستان چی شد؟ <تصفيق> اینی که سازمان تصمیم بگیره به این سمت بره یعنی به سمت توسعه محصول بره به سمت توسعه بازار بره توسعه محصول توسعه بازار بره این استراتژی کلان شرکتیه و ما تو سند که اینو در میاره که به کدوم سمت حرکت بود. متوجه شدیم؟ من یه خواهشی که دارم درسه گذاشم خدمتتون گفتم به هیچ عنوان قیبت نکنی تا مدیریت استراتژیک. چون مدیریت استراتژیک در برگیرنده تمامی دروس MBAئه. و این درس اگر یاد نگیرید خیلی داستان میشه براتون. یعنی جالب نیست. خب. چهار کنیم. در بازار دیگه. اینجایی. اون توسعه محصول اصلا باست نگه ایش دار میگم اینو نگه داشتی؟ این سلولو چهارم ما خالیه؟ بله خالیه با کسا خالی با چهارو میگم سرنده استراتیجی مگه بلند مدت نیست بعد توسعه بازار و توسعه محصول یه تصمیمهایی مثلا کوتوه مدت نیست نماشه مثلا تو یک سال شاید یه سال تو سمسول میتونی بده شاید یه سال تو سمسول میتونی بده یه شبای چیز درک تو شروع کرد ولی اندک م... باید بالا بره مدت مدت مدته شما سال اگه با خرید کرده اول مثلاً داره چورشی بعد تولید میکنه بعد رفته به سمت مرابو ای مرابو وارد بازار شده حالا همه مرابوی بعد رون میشناسه این زر یه سال اتفاق میفته خیلی سخت قسمت مدت چهارده خ تنب و پذیریه همگه هشت تنب و پذیریه غیره نو پذیریه افقی متفاده شده تنب و پذیری یعنی یعنی گسترش نوع محصولات, محصولات, محصولات؟ مسئول؟ خب که دو که محصوله محصولات رقابتیش خب تنبوه تعریف تنبوه آه... پذیری تعریف یعنی اون جنسی که داریم شکلش رو بازش رو عوض کنیم و اگه مثل ماسی که میشن تمایز که ببین من همیشه تو دانشگاه بین تنبوه پذیری و تمایز مشکل داشتم ببین سلام میداریم وقتی متمایز باشه تنبوه ایجا داشته نه نه <تصفيق> نه اون میشه تمایز. بست بندی تغییر بدی شکل را تغییر بده، تغییر بدی رنگ تغییر نمیشه تمایز. نه، تنوع نمیشه. انا پرواز لیست او تمایزه، اوکی؟ تنوع پذیرو سلور 3 و که من خالی گذاشتم. سلور 3 نگاه کنیم؟ این فرق این تنوع این شما میایید یه شکل ببینید، درسته. اینو اگه من چی بود؟ روخخ رو این توسعه بازار توسعه محصولول بر میشه پرو پذی سلول۴ مساویس با تن پذیری. پذیری تعریفش توسعه محصول و توسعه بازار محصولات مختلفکن که شما به بازار های مختلف ارائه کنید، می کنید میشه یه کانسپته. مثل همجایی همین دایی استراتیجی و پذیری داره یعنی چی؟ میگه بره محصولات مختلف و ماشین و چه یخچال و تلویزیون به بازارهایی مختلف میفرسته بس مطاعت این حالا داستانی که اینجا وجود داره یه بحث اینجا هست ما داستان داریم ما این تخته آیه نماینده ای کلاس گفتیم بهشون برای شما خوبه برای من برای من دور برای, کنم برای بره بره این فرزا داره یه دیگه یه کاری تخته از این کاغذ های ورقه های این رو یه بزرگ هست، مثلا یکو چه تقریبا در یه متره من دو سه سال پیش دیجیتال وایت بورد داشتم که به کامپیوتر بس میشه به, به لپتاپ بس میشه نه او دیجیتال وایت بوردی که فکر میکنید یه دستگاه بس میشه به کامپیوتر بعد یه کاغذی رو شما میذاره روی یک در گیرنده ای خب قیمتا تو بازار با 650000 تومان دیگه اون نیست بعد این کاغذی که مینویسم شما روی اسکرین میبینید نه اون که میسه حال می‌سما با دیگه. تو میزه که یه کاغذ دیگه میزه. سارا سدانا که کلاس تفکر اساسی که از اینا استفاده کرد. آره، <t الله> نه. نه. باید پاک کنی، باید. آره، طولانی مادر نمی‌نو بعدش چی ما میتونیم به شما کنیم. شما بنویسید ما پاک می‌کنیم. ببین، باز طلا و رو حالا یه توی بدم، و و افاقی چیه؟ یه خب. <تصفيق> موقع سازمان شما یه محصول تولید بکنه برای ما محصول ای خب و نوید پنج پنگ 100 بخوام درصد درسال هم از محصول ایه پله به پله بریم خو خب یه موقع است سازمان یه محصول رو تولید میکنه به نام A یه محصول کوچولویی رو تولید میکنه به نام B خب 95% از درامدش از محصول A 5% از درامدش هم از محصول B و این دوتا هم با هم در ارتباط وقتی میگم ارتباط یعنی محصولات از نظر تکنولوژیکی، فیزیکی، منابعی با هم در ارتباط هم مثل تلیزون و کنترلش نه با <تص> نه مثله مثلا وقتی ما میگیم کاله بو. کاله ماس تولید میکنه، دوخ تولید میکنه، کره، پنی اینا همه لبنیاته در ارتباه، همین ما بهش میگیم همین گهنه ریلیتده فیلد لبنیات آره بقد کن، یه واقع سازمان سه تا محصول تولید میکنه ای بی سی که این سه تا محصول هر کدوم 33% درامت درش داره یعنی توضیح شده و هر سه تا محصول با هم ارتباط تکنولوشیکی فیزیکی منابعی دارن همینگنم به عبارتی متوجه هستید یه موقع سازمان A B C A با B در ارتباطه A با C در ارتباطه ولی B با C در ارتباط نیست محصول سی درصد از درآمدش از محصول ای سی درصدش از محصول بیه و سی درصدش از محصول سیه درسته؟ <تصفيق> یه معرض سازمانی سه تا محصول تولید میکنه که این سه تا محصول اصلا ارتباط تکنولوژیکی فیزیکی منابع یا با هم؟ نداره و سی درصد درآمدش از محصول ایه سی درصدش از محصول سیه و سی درصد سیه سه هم از محصول بیه. تو تمام این مدلهای که من برای شما نوشتم خوب بقیر از حالت اول دیگه یعنی حالت اول رو با دیفات من نوشتم این یعنی یک دو سه چهار خب یک دو سه چهار این چهار موده diversificationه، تنب و پذیریه درسته محصولات مختلف برای بازارهای مختلف ولی یک با دو فرق میکنه دو با سه فرق و سه با چهار فرق چه فرق میکنه؟ ببین حالت یک تنب و پذیری هست یا نیست؟ هست درسته محصولات مختلف دیگه ها؟ برای بازارهای مختلف. خب چهار تنب و پذیری هستی که درست یا در؟ ولی یک با چهار کاملا متفاوته چه تفاوتی با هم میکنه؟ درصد سودهیش فهم میکنه ارتباطش فهم میکنه. یا به عبارت ساده تر بگیم سطح تنب و پذیریش شما هم فرق میکنه. چه خیلی متنبه سطح تنب و پذیریش خیلی بالاست و یک سطح تنب و پذیریش خیلی بالاییه خیلی متنبه نیست متوجه مظرومه شدیم و فرضی دیگه که میکنه یک مدل یک محصول ایبابی ارتباط تکنولوژیکی فیزیکی منابعی با هم دارن این پذیری رو بهش میگن همگن متوجه هستید؟ دو رو بهش میگن همگن خب چهار مدل چهار سفه محصول ارتباط تکنولوژیکی فیزیکی منابعی با هم ندارن این رو بهش میگن غیر همگر خب؟ سه بهش میگن همگر و قیره حالا ترکیب جفت جفتشه حالا بیروید چند تا مثال بذاری؟ نه کارید مدلش دو ها، دوه دو. کاره دوه چند چنده؟ سه باشه نه چایی به نوعی میاد اینجا قرار میگیره گلستان. گلستان سه میشه. کی اوندا؟ کیا اینا همه مدل 4 ان. فرقشو به اون گلستان چیه؟ گلستان فقط رشته قضایی کار میکنه؟ وعیه مصبیلی رشته های مختلف داره کار میکنه مثل مثلا هموار احسان چای و برنج و اینا و که چه باید؟ اینا. باید, باید. باید. سامسونگ خیلی, سامسون خیلی داره برای چه میدونم لوازم موسیقی میزنه؟ بعد شما در نظر بسید گوشی موبایل هم میزنه سامسونگ تا... تلفیقی از سه و چهار میتونه باشه چون مثلا الان تا ای بیتری بیلیرش با موبایلش مثلا توی رفت خب میشه ای دیگه؟ خب میشه اصلا ای چونم؟ سلام من خب میدونم مودل یک اینجورد داریم نیزی با توسع محصول ما چه تباید؟ توسع محصول، فقط رو یه محصولی؟ توسع محصول یعنی محصولات مختلف برای یک بازار؟ تنف و پذیری، یعنی محصولات مختلف برای بازارهای مختلف این ها یعنی محصولات مختلف برای بازارهای مختلف تنف و پذیری همگر و قرمگر و متبطی شد چیه؟ آره؟ نه بری, بری و پذیری افقی چیه افقی صد یک میشه مثال بزنیم کاره برای یک اپل شماره آمد... یک اپل ماشینم داره میزنه اپل ماشین میزنه؟ ماشین بربی حالا جدیدن ممکن تا الان اینجوری نباید تا الان آیپاد، آیفون، آیپاد، لپتاک میده همش یه جنسه حالا وقت شما این ماشین داره میزنه بینونه شاید این بیزینس بی باشه اپل مدل شیک مدلش یکی <تصفيق> خب تنفه و فضیبه رو چیه؟ یه موقع هست سازمان محصولی رو تولید میکنه ولی هیچ سود و درامادی ازش نداره گرفتید پن تو تناوب پذیری و افقی زمانی که سازمانی محصولی رو تولید میکنه ولی نه سودی ازش داره یا انتظار سودی ازش داره نه درآمدی داره نه انتظار درامادی ولی اون محصول رو تولید میکنه که محصول اصلی خودشو بفروشه اینو بش گفت تناوب پذیری و افقی مثل بانک پاسارگاد بانک وظیفه چیه؟ ارائه خدمات بانکیه دیگه ولی بیمه پاسارگاد ارائه دیگه. بیمه پاسارگاد یه محصول برای بانک که کسا قرار نیست ازش سود درآمد داشته باشه ولی ارائه میده که عملا برندش رو تو ذهن مشتری پوزیشن کنه یا جایگاه یابی بکنه متوجه هستی؟ و این تنوع پذیری رو بشکم تنب و پذیری افقی دوستان ما دورای آموزشی برگزار می کنیم شرکت ما خب. ولی نه درآل آنچنانی ازش داریم نه سود می چه وسه ضررم می کنیم چه وسه مجانی هم برگزار می کنیم آره؟ نه دورای شرکت ماش دیدی اینجا نمی؟ شرکت زیران دارم دورای آموزشی اصلا کار ما آموزش نیست ولی ما دورای آموزشی برگزار میکنیم. که چه اتفاقی بیفته؟ اگه شما چند تا برام. بله. مثلا فرض کن. بچه های ما میرن تو سایت مشتریان. خب. پتروشیمیا پالاشکار دوره‌های مثلا فنی رو برگزار میکنن. ما نامه میزنیم میگیم آقا کلاس مثلا فنی استاندارد توسط تا تاسیسات فلانی برگزار می‌شه باید آموزش تماس میگه یه روز ست میشه بچه های ما میرن. سری کلاس رئیس تعمیرات نشسته مدیر تدارکات نشسته میدونی چه دارم بهت میگم چه مثلا رئیس مجتمع نشسته بچا آموزش میدن که آموزش میدن از طرف شرکت ویرا تهران دارن آموزش میدن میدونی چه دارم میگم از طرف شرکت ویرا تهران آموزش که میگم ویرا میره تو ذهنشون میشه یعنی عملا یه جوری دارن تبلیغ میکنن اینو بهش میگن و پذیری افقی یعنی مخصوصی خدمات شما دارید تو سازمانه که هیچ سود و درآمدی ازش نداری ولی ما محصول خدمات رو میخوایی داشته باشی که محصولات اصلی تو بفروشی خیلی مهم تو بازاریابی خیلی مهمه اصلا که هم بازاریابی ما میدونی چیش یه دفعه مثلا سال سه میلیارد چهار میلیارد تومن از یه ما فروش داریم روتورهای توربین و کمپرسور رو ما با مشتریا ها صحبت میکنیم میگیم روتور رو بفرست بیاد کارگاه ما کارخونه ما براتون بازرسی میکنیم و مشکلشو بهتون میگیم چیه بعد دیگه چقدر هزینهش میگیم میکنیم عجب پو میاد روتور کارگاه ما ما بازرسی میکنیم بهترین گزارشو بازرسی و مشاوره میدیم به اینا مشاوره میدیم که آقا این روتور چه, اش... چه اشکالی داره این خودش خدمات دیگه از این خدمات ما پولی نمیگیریم این مشتری آلوده میشه آه آره مشکل میگه این مشکل داره درستش یا حتی اگر مشتری بخواد مناقصه برگزار بکنه، ولی مشتری دولتیت مناقصه برگزار کنه. تیر روتور وقتی فرستاده کارگاه ما سخت که دوباره روتور از کارگاه بکشه بیرون ببره یه جایی دیگه. حتی بعضی هم سه جای کارو میکنن، ولی این مشکل گفت تلاقی پذیری افقی. گرفتید سوالی هست؟ تلاقی هم یک پیوند افقی متوجه شدی؟ بریم سراغ بعدی. دوستان شده کار کار همیشه میگیره و همیشه هم درستان پس میگیره دیگه به اون شخص کاری انجام میدم که صدری هم مدرم مدرم پیش یازده یا برون سپاری ببخشید کوچک سازی برون سپاری انهلال سازی یا سازمان تعدیل میدی میکنه به دلیل مشکلاتی که داره فرآیندها فعالیتاشو کم میکنه یا نیروهاشو کم میکنه اینو بهش میگن کوچک سازی چی که میگیره میده شرکت های دیگه انجام سازمان با آقا کاری رو میگیره و میده برون میکنه به شرکته که انجام بشه یه نقطه برونسپاری سپاری نقطه مقابله یک پارچگی عمودی رو به جلو و رو عقب درسته ما در یک رو روبه جلو و روبه اقعب میخواستیم رو به ترمی کننده بیشتر. کاهش بدیم اینجا تو داری وابستگیمونو به ترمی کننده بیشتر بیشتر انهلان چیه؟ چی دکیه؟ تحتیق کمول بشه تو خونه اشباهار شاددان شاددان این هم یه بیزینس، یه استراتیجی تو بیزینس رو که حیط مدیره به این نطب برسه که آن بیزینس باید شاددان بشه گای اوقات یه تصمیم گیری، بهترین تصمیم گیری، بهترین استراتیجی خوبیات داریم آره جانم چند سایز بیاد شده این شایدانه شایدان شده بعد هاراگیری که داره دن سایز میشه دن سایز میشه راک سایز نمیشه نه، دن سایز میشه کوچک سازی میشه دان سایز خب ببین بکن استراتژی بس استراتژی های کلان شرکتی چند تا شککت بهتون گفتوز 19ده تا ما استراتژی کلان شرکتی داریم درسته بله استراتژی های یکیمون رو امادی رو به پایین یا رو به جلو. جلو به دست آوردن مالکیت یا افزایش کنترل بر سیستم توزییح یا خرده فروشی یا زمان که شما قدرا چ نظری رو در مقابل توضیح کنندگان و خورده فروشان در پایین دستی یا افزایشبدیم شرکت تلفن تلگراف آمریکا در سال 1997 45 فروشگاه افتتاح کرد و نام آنها را خدمات تلفن تلگراف آمریکا نامید. شرکت ایران خودرو شرکتی دارد به نام ایساکو که نمایندگی مجاز ایران خودرو و خدمات میدن به مشتریان. اینو میگن یک پاچگی عمودی رو به جلو. یعنی وابستگی رو به توضیح کنندگان دارن کم میکنن. عمودی به بالا یا روبه عقب یه موقع هست شما گفتم بابسته که تو میخوای به ترمین کننده کم بکنی یک هتل بینال مندی یکی از ترمین کنندگان مبلمان را خریداری کرد شما میدونین که هوتل ها خیلی بابسته به مبلمان هستن بابسته به پاچک هستن به پرده هستن خریداری کرد یعنی چی؟ یه یعنی کننده را خریداری کرد گاهی اوقات شما تعمین کننده را اصلا خریداری میکنید. این میشه یک پارچگی عمودی رو به بالا یا رو به عقب. ها؟ اوکی؟ با بله، یک پارچگی افقی به دست آوردن مالکیت یا افزایش کنترل بر شرکت های رقیب یعنی هم. همکاری با رقیب اوقات مالکیتش اصلا به دست بیاری. خریداری بکنی شرکت رقیب رو. بانک فرست یونیون، بانک فرست فیدلتی را خریداری نمود شرکت جی ای، شرکت ترمودین را خریداری نمود ماکروسافت نوکیا را خرید ماکروسافت اینا بهشون یک پارچگی افقی خب؟ رسوخ در بازار، چهار استراتژی بود دیگه، درست یا نه؟ بالاوردن سهم بازار برای محصول یا خدمات کنین از مجرای افتاش تلاشایی که در زمین بازاریابی صورت داده میشود یه محصول برای یه بازار شما سعی میکنی به فروشی و سهم بازار تو ببری بالا شرکت شیرین اثر فروشگاه زنجیره برای عرضه مستقیم محصول در نقاط تحصیل تهران رو اندازی میکنند رسوخ در بازار یک محصول برای یک بازار یعنی شما عملاً نمی‌ای محصولات مختلف رو برای بازارهای مختلف بریم یک محصول برای یک بازار خب؟ بله، رسوخ در بازار توسعه بازار یعنی یک محصول برای بازارهای مختلف عرضه خدمات و محصولات کنونی به مناطق جغرافیایی جدید یا بازارهای مختلف مثل شرکت شعب خدا به دفتر نمالی‌ای در کشورهای خاورمیانه افتتاح کرد حتی این شرکت آنها بسته شده ما راستان بوتل ازدوی با توبوسی نه درست <تصفيق> آره، اتوبوس با توبوس درست یا توصیل محصول بالا دو بردن فروش از طریق به بود بخشن محصول و خدمات کدونی؟ یا از نوع جلی از آن محصولان و خدمات؟ توصیل محصول یعنی چی؟ بریم محصولات مختلف؟ برای پازاران مختلف برای این هم <تصفح> شرکت ایران خودرو را که بودی‌های جدید سمند ارائه می‌کنه یا <تصفح> شکر؟ <تصفح> هن <تصفح> آفا ما هیونده‌ای توسر می‌دونم سرین کلاس‌ها که درس میده کلاس شما نیمسه بعضی هر کلاس از قدیم می‌گرم هر ما مثال خارجی می‌زدیم استاد مثال ایانی می‌زنیم با متوجه گوی نمی‌راد بیا شاخت‌کاری آمون چوه طلب پذیری استراتژی هفته‌ام چی بود؟ طلب و پذیری همگه شرکت نیا محصولات مختلف که ارتباطات تکنولوژیکی، فیزیکی، منابعی مرتبط دارن تولید میکنه محصولات همگن، مثل کاله خب، نه همگن یا غیر همگن، زمان که سازبان محصولات یا خدمات مختلفی رو داره ارائه میکنه بله، شرکت میسیس که در زمین امور بانکی و بیمه در بریتانیا فعالیت میکنن یک شرکت نرم افزاری مراقبت‌های بهداشتی را به نام سیستم رایانه یعنی مدیک خریداری کرد. خب یعنی می‌خواد وارد یه خدمات دیگه بشه. آره وارد یه عرصه دیگه می‌شه، آره، بیان تلاو پذیری ناهمگه. تلاو پذیری افقی یعنی چی؟ گفتم افزودن محصولات و خدمات جای و غیر مرتبط برای مشتریان کلونی جهت افزایش درآمد، سود یا فروش محصولات موجودتون. بانک رفاه برای مشتریان دارای حساب جاری همراه بیمه عمر ارائه کنند بیمه اون که کار بانک بیمه اون رو میده که پیان حساب باز کنند. و کاهش و تعدیل گفتم بهتون یعنی چی استراتژی کاهش و تعدیل؟ مثل بانک ویلز فارگو بین سالهای ۱۹۶۶ از میزار مشاغل موجود موجود ۱۱۶۰ شب کاهش داد کاهش سازمان یا نروی انسانی واگزاری یا برون سپاری که خدمتتون گفتم و انحلال مثل شرکت مثلا ریبال تمام دارایی خود را به فروش رستن و فعالیت‌های خود را پایان داد درسته؟ جا؟ ریبال چه شرکتی بود؟ شرکت تولیدیه تولید فیوز و ایناد. خب استراتژی ها کردن شرکتی رو مطمدی شدیم دوازدرت استراتژی رو بریم این مثال بزنیم یاد داشت کنیم دارم دارم مشخص کنه که چه تو چه گروهی از استراتژی های کلان شرکتیه اینا که مثلا همش استراتژی های کلان شرکتیه ولی تو چه گروهی قرار میگیره اون شیلیسانس بله بله اون آخرین شینیه قرارداد بول ال مدت با مشتریان حق امتیاز فرانچایز بله بله فرانچایز یا فرانچایز بله حق امتیاز رايت. آره درسته. نه نه نه ببین بگو چه است خودم جازه خودم که از استراتژیا کردن شرکتیه. نه. استراتژی من گفتم جزو خودم میشه. میاد دانش میشه یک آره تو فکر همه رو احساب من این خورد کردم یه دفترچه کوچولو داره؟ بابا، یه کتابی؟ گرفت یا؟ من خورد شد کدامه از من بابا استراتجی کنال شرکتی رو دارم بگم دفترچه کوچولو دیگه امروزی یا افتر کلاس من پایمان یا افتر شد از پایمان امروز پستگی داره که رایگان باشه یا نباشه دیگه و اینا که تناوب اگه رایگان باشه که میشه 100 همون مثالی که خودتون زدید افقی میشه دیگه تناوب افقی یا نمی‌خوام چیزی باشه اگه با اون دید بخریم قالب داره خب مدیریت و دانش چه استراتژی استراتیجیه؟ یک پارچگی عمودی رو رو کاردن دوست دام میگه یک پارچگی عمودی رو به بالا یا رو به عقب چرا؟ دانش تو چیز بکنیم، بیشتر بکنیم، یا به ترمی کننده یا وقت افزایش دیگر افزایش دانش در سطح سازمان وابستگی رو به ترمی کنند و کم می کنند درسته؟ پس میتونی یک پارچگیه؟ عمودی روبه عقب باشه ها؟ تبلیغات چیه؟ نه،, نه، چرا؟ موسیقی. موسیقی. موسیقی. چرا؟ موسیقی. چرا یه افاقی؟ اف... تبلیغات؟ موسیقی. شما با تبلیغ دارید وابستگی تو به توضیح کنندگان کلان و خورد کم میکنی. شما مثلا می‌یدید هایپر مارکت می‌یدید برند‌های مختلف اونجا فرستنن تو هایپر مارکت یه دسته‌ده باید به هایپر مارکت برن که برندش رو فروش بره یعنی امراح هایپر مارکت نقشه تبلیغات داره برای برند‌های مختلف بازی می‌کنه پس یک بایش مسئله بایش یه دوره‌ی آموزشی باشه برای تبلیغات میشه کنم با بزیگه افاقی؟ من فکر اونجوری نه, نه, نه. خود اپلیکات فردا آره. آره. این میشه یک پارچگیه. درسته؟ اصلا توسعه محصول یا نه نه نشه توسعه محصول. عمودی رو به جلو. چون وقت اپلیکات‌های انجامیه ممکنه در توسعه محصول باشه. یا بازار باشه. ممکنه در اصل توسعه بازار باشه. بره خود توسعه بازار توسعه محصول. استراتژی یه استراتژی. یک پارچگی عمودی رو به جلو. خرید دستگاه CNC یک پارچگیه یک پارچگیه روبه عقب لیسانس چی میشه؟ لیسانس من تو مدیریت بهتون رو دارم و فرانچاز یعنی یه شرکتی به شرکت دیگه حق استفاده از منابع رو میدهد توسعه بازا بیشه نه چرا توسه بازا بیشه؟ بارشگیه... تو فوق... تو فوق... یک پارچگیه نه افقیه فوق... یک پارچگیه فوق... فوق... افقیه یک پارچگیه افقیه تو افقیه میشه فرانچیز این هم یک پارچگیه افقی مدیریت کیفیت در سازمان چه استراتیجیه؟ ها؟ به بوده مسئولیت میشه باشه کیفیت تو سه مسئولیه نه نمی شما با مدیریت کیفیت در سازمان در زیر ساخته تا عملا دوباره در تقویط میکنید پس یک پارچگی عمودی روبه عقب میشه خب پس اینم میشه یک پارچگی عمودی روبه عقب آموزش خدمات آموزشی برای مشتریان مختلف عمود. یک پارچگی عمودی روبه قرارداد بلند مدت با مشتریان یعنی با مشتری با یه سازمانی میاد قرارداد بلند مدت می‌بندین که اون نیاز هاشو مرتفع کنی. رو مرتفع دا بکنید این استراتژی میشه نه نه مشتری مشتری, مشتری. مشتری دو تو, دارید. تو, دارید. تو دارید. وابستگی تو به پایین دستی کاهش میدی یه رو ام. به جلو هم شما با مدیریت کیفیت با استاندارسازی در سازمان همه هم دارید دانش رو در زیر ساخت و ندارید دا و با که در تمنی کنند کاش میدارم کپره لیول استراتژی ها رو شدید؟ ها؟ ندارم سخت سفر تا مدیریت استراتژیک. جانم مثلاً اصلا مکدونالد فرانچایز داره. شما بازارش توسعه نمیده. بگی حالا برای مکدونالد توسعه بازاره و یک پارچگی عمودیه. مثلا یک پارچگی افقی هم اینجا یعنی به عبارت این هم یک پارچگی افقی هم شما که شما همکاری میکنی. شما هزینه که فرانچیزو آه... نه ببین مکدونال میاد به یک شرکت رقیب حق استفاده از برندشو میده یک خیلی رقیب نمیشه دیگه وقتی اسم مکدونال دنیا در طرف چرا دیگه؟ مثل یه رستورانه دیگه، مثل یه شرکته چرا رقیب نمیشه؟ سوالیان داره یک پولی میده دلید. دلید. اون پوائنده چیه؟ میخوای بگی چی؟ میخوای بگی این دقیقه توسه بازاره توسه بازارشو توی کشوری دیگه مثلا همون کشوری و مکدونالدز توسعه بازار باشه. چون کیس با کیس فارمه چون واسه فرانچایز هم صد کلی نمیشه، واسه شرکت با شرکت متصل اون یه طرفه این یه طرفه، ای. دیدمون از دیدمون شاید توسعه بازار، دید ما توسعه بازاره. اما او دلیل اینه که رفته مکدونالدز گرفته. بعد دید این بعد میتونه فرانچایز باشه. از دید کسی که میره حق امتیاز مکدونالدز می‌خره میتونه فرانچایز باشه. ولی از دید مکدونالدز ممکن توسعه بازار باشه. متوجهت کوپر لول استراتژی‌ها؟ آه آلی است. بعدی پس برای تدوین استراتژی های چلان شرکتی که دوازده مدل بود. درسته نه. یعنی ما برای اینکه بگیم یه شرکت شرکت یکی از این مدل ها رو اتخاذ بکنه، کدوم یکی از استراتژی ها رو اتخاذ کنه، 4 مدل خدمت رو بریم سراغ مدل اول به نام مدل سوات مدل های ابراهمی جی <تصفيق> توز کیو اس پی ام این مدل ها برای تدوین استراتژی های کنان شرکتی اوکی سوات جی ای تور و کیو اس پی برای برای بحث سوات پیش تحلیل اوتی سوات آنالیزیس تحلیل سوات سوات سوات انالیسیس همون که ما خدمتیم گفتیم سوات شامل چهار فاکتوره درست یا نه؟ strength, weakness, opportunity, threat نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدید درسته؟ نقاط ضعف و قوت، نقاط یهن یعنی که تحت کنترل یک مدیر هستن درسته؟ مسل چی؟ به من بگی مثل چی؟ نقاط زخف و قوبن مثل چی؟ متعباری و مثل جان؟ من داره باز کردن من اینکه من کنی گرفته خب نقاط زخف و چی؟ کیفیت مثل چی؟ بردودانی کیفیتی محصول مثل مثل؟ نقاط در مالی <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> پستمان خوبه. استر کوه.ایشه بودن پرسونل به سازمان. مدیریت دانش در سازمان، اینش نقطه قوتت. بله. تبلیغات، نقطه ضعف. عدم توان مالی، نقطه ضعف. درسته؟ نه. اینا میشه یه سری از نکات قوت و ضعف سازمان. پس ببینید در سوات انالیزیس عواملی قابل کنترلی هستن از محیط داخلی. که نسبت به رقبا قوت یا ضعف شما رو میآید نسبت به رقبا قوت یا ضعف شما رو میآید خب در زمینه مدیریت بازاریابی مالی حسابداری تحلیلی تحقیق توسعه سیستم اطلاعات کامپیوتری به عنوان نمونه ما میتونه نقاط ضعف و قوت رو برای سازمان شناسایی کنه دقت کنید وقت صحبت در SWOT می‌کنیم. نقاط قوت داریم، ضعف، فرصت، تهدید. درسته؟ ضعف و قوت یعنی تحت کنترل مدیره. شما برای اینکه استبیلوها را در سازمان بتونید شناسایی کنید، بتونید در سازمانتون شناسایی کنید. آقای روبینز در کتاب مدیریت میگه سازمان رو به 6 قسمت تقسیم بکن. سازمان رو به 6 قسمت تقسیم بکن. قسمت اول قسمت مدیریت. قسمت دوم بازاریابی. قسمت سوم مالی. قسمت چهارم تولید. قسمت پنجم تحقیق و توسعه. قسمت آخر آیتی آیتی و چک لیستی برای این داستان وجود داره که شما بتوانید نقاط ضعف و قوت در این شیش حوزه تو سازمان مشخص بکنید در سازمان رصد بکنید متوجه مثلا هوزه مدیریت آیا سازمان از مفاهیم و اصول مدیریت استراتژیک استفاده میکند؟ خب آیا حداقل فوت مدت و بلند مدت شرکت قابل سنجش و اندازگیری هستند؟ سوال دیگه، یعنی شما نقاط قوت و ضعف و و شناسایی کردید؟ یا بازاریابی، آیا بخش بندی بازار به شیوه اثر بخش انجام شده است؟ آیا در چرخه رقابت سازمان پایگاه مناسبی دارد؟ و آخر. توسعه بازاریابی، توسعه مالی، تولید، تحقیق توسعه یا سیستم اطلاعات رایانه؟ شما میتونید نقاط قوت و ضعف و در سازمان مشخص کنید پس نقاط قوت زعف عواملی است که تحت کنترل مدیره و نسبت رقبا ضعف و قوت حساب میشه اک دقت کنه دوستان ما الان بحث SW داریم تو تحلیل سوات وقتی که نقاط قوت و ضعف رو برای سازمانت بنویسی متوجه حالا از این چکلیس استفاده میکنی بر اساس تحلیل خودت میخوای بنویسی فرقی نمی کنه یه مدیر مثلا کاری با چکلیس من خودم کاری با چکلیس ندارم سازمانم رو و نقاط ضعف و قوت رو می یا بعداً در غالبی یک جلسه میاییم نقاط ضعف و قوت رو مشخص میکنیم دقت کنید تو تعلیم سواد حد اکثر چهار اس حد اکثر چهار تا دویلیوم باید بنویسید نه بیشتر نه کمتر حالا اگه چهار تا شد پنج تا اشگاهی نداره یا چهار تا شد ست تا نه حدود چهار تا دقت بکنید، شما تو سازمانت ممکنه 20 نقطه قوبر داشته باشید تا نقطه زخط داشته باشید خب؟ ممکنه و این مهم ماشو انتخاب کن و بلداش اینجا نونیست حتی اکثر چهار تا یا چهار تا دمیلیو مثلا تفکرات تحقیقاتی تفکرات استراتژیک که سازمان در راستای تحقیق داره میکنه در راستای توسعه داره انجام میده. اصلاً چقدر دید رشد و توسعه مدیران یک شرکت دارن. متوجه هستین؟ این کلاس نمیخواد تحبیه نداره؟ اینجا بالای کردن؟ امروز این نه اینجا که چیز داری؟ آه. آره؟ اونو که نه اون رو من انجام میده. آره, شایم آره شایم ممیده. کاره ممیده. من میدم. من من اون بودم. تو ذره هوای داخل خب عوامل محیط خارجی. عوامل غیر قابل کنترل هستند که تحت کنترل مدیر نیستند. تحت کنترل سازمان نیست. و در قالب فرصت یا تهدید خودشون رو نشون میدن متوجه در قالب فرصت یا تهدید. دقت کنید برای قوطی ها opportunity و threats درسته؟ فرصت یا تهدید. شما از چه عواملی استفاده می‌کنید که فرصت و تعدید مشخص کنید؟ OT فرصت‌ها و تهدیدات خارج از سازمان شما هستند درست یادم؟ نه؟, نه شما از چه عواملی در محیط بیرونی توی استفاده می‌کنید تا فرصت و تعدید مشخص کنید؟ میشه بگید به من؟ یکم جده ماس فالنده فکر از اشتباه بود کلی. عوامل محیط بیرونی سازما چه وامدیه؟ هم 11 تا. همون 11 تا. میشه به من بگید؟ سیاسی سیاسی اقتصادی فرهنگی اره تکنولوژیکی تکنولوژی جغرافیا جغرافیا جامعه شناسی جامعه شناسی دیگه تنش داشتم تامین کننده سامين کنندگان مشتریان ها رهبر ها مبانی ورود به بازار کالا یا خدمات چه روزی شاید هم هم هم بابا اینجا از رو خوندن شیش برای به پنج یازده آمل در محیط بیرونی سازمان وجود داره و این یازده عامل به شکل و روشی میتونه تحقیل و فرصت رو برای سازمان خلق کنه یا به وجود بیاره متوجه هستی؟ و سازمان به سازمان هم متفاوته مثلا عامل تکنولوژی برای یه سازمان ممکنه تعدید باشه برای یه سازمان دیگه ممکنه فرصت باشه عامل فرهنگی برای یه سازمان ممکنه تعریف باشه برای یه سازمان دیگه با فرصت باشه دقت کنید تو سوال برای استراکت کردن یا مشخص کردن قوتی حد 800 یا حدود 4 تا او و حدود 4 تا تی رو باید مشخص کنید شاید نیست هسته تنمادش چیچ میکنی؟ خوی دارم از که همه همه ده درد همه به هم تا نیاد ما بارون دیدیم چند وقته دو هفته احران اکسر زود دیم داشت کنیم افیاد. نه جازه بیره تو اسفن اون درسته روز اول اسفن اینجوری هوا این تا فردم هستش ها درمزه بفرم بفرم